داستان تریتیل، لیتیل و پرندگان زمانهای قدیم شاهزاده خانم بسیار زیبایی زندگی میکرد که هرکس با یه نگاه دلباختش میشد پدرش لحظه چشم از اون بر نمی داشت. خیلی مراقبش بود تا اینکه یه روز دختر زیبا رو ناپدید شد کم مونده بود پادشاه از غه مرد بشه اما دستور داد که وجب به وجب قلمروش رو برای پیدا کردن دخترش بگردن. اما هرچی بیشتر جستجو کردن کمتر به نتیجه رسیدن و هیچ نشونه ای از اون پیدا نکردن. پادشاه تو اوج ناامیدی و افسردگی اعلام کرد که هر کس دخترش رو پیدا کنه و به قصد برش گردونه میتونه باهاش ازدواج کنه. به خاطر همین همه مردای جوون دست به کار شدند تا اون رو پیدا کنند اما همه اونها بعد از جستجوی زیاد دست از پا درا سر برگشتند نزدیکی های قصر پادشاه پیرمردی زندگی میکرد که سه تا پسر داشت دو تا برادر بزرگتر در مورد مسئله زندگیشون اجازه داشتند که به طور مستقل تصمیم گیری کنن اما برادر کوچکتر باید از برادرای بزرگترش پیروی میکرد. وقتی هر تا برادر بزرگ شدند، برادر بزرگتر به پدرش گفت که از زندگی آروم و یک نواخت خسته شده و میخواد راه سفر رو در پیش بگیره. پدر و مادر از اینکه پسر بزرگترشون میخواست اونها رو ترک بکنه و به راه دوری بره خیلی غمگین شده بودن. ولی با این اوصاف همه ی مقدمات سفر پسرشون رو فراهم کردند. و بعدش هم یه جوف چکمه تازه پسرشون دادن. وقتی همه چیز آماده شد، پسر از پدر و مادر و برادراش خداحافظی کرد و با خوشحالی و شادی به راه افتاد. پسر بزرگ چند کیلومتر از راه رو از بین جنگل ها عبور کرد و بعد هم به یه منطقه بی آب و علف رسید. همون جا نشست و خورجینش رو بیرون آورد تا چیزی بخوره. هنوز چند لغمه بیشتر نخورده بود که پیرمردی کهنه پوش از کنارش رد می شد. چشم پیرمرد به غذای پسر جوون افتاد و بهش گفت: های جوون. جوان، کمی از غذات رو به من میدی؟ پسر جوون جواب داد؟ نه، هرگز وقتی خودم غذای کافی ندارم، چرا باید تو رو سهم کنم؟ اگه دلت غذا میخواد باید خودتون رو به دست بیاری. پیرمرد گدا راهش رو کشید و؟ رفت پسر جوان بعد از خوردن غذا از روی زمین بلند شد و بعد از چند ساعت پیاده روی به یه چمنزاری رسید و همون جا روی چمنها دراز کشید و بعد دوباره از توی خورجینش یه مقدار نون و شیر بیرون آورد وقتی در حال خوردن و نوشیدن غذا و شیرش بود پیره کهنه پوش و فقیری که خیلی بدبختتر از گدای اولی بود از کنارش رد شد پیرمرد از پسرک درخواست غذا کرد اما پیرمرد بیچاره به جای دریافت غذا فقط فوش و ناسزا تحویل گرفت و در نتیجه لنگان لنگان و خسته راهش رو ادامه داد نزدیکی های غروب مرد جوون به ناحیه جنگلی رسید تصمیم گرفت اونجا هم یکم استراحت کنه و یکم غذا بخوره پرندهها ها تا چشمشون به غذای پسر جوان افتاد به طرف اون پرواز کردند و منتظر بودند تا تکنانی از غذای پسرک رو بردارند تا خودشون رو سیر کنن اما مرد جوان به طرفشون فقط سنگ پرتاب می‌کرد و اونها رو ترسند. بعد هم برای گذروندن شب توی اون منطقه به فکر پیدا کردن یه محل مناسب افتاد اما جای مناسبی که بتونه اونجا بخوابه و استراحت بکنه، پیدا نکرد. چون منطقه خیلی فضای بازی داشت و از همه طرف هوای سرد به سمتش فجوم میکرد. با وجود اینکه کلی پیاده روی کرده بود و خیلی هم خسته شده بود، از سر جای خودش بلند شد و دوباره لنگان لنگان راه افتاد تا پناهگاهی برای خودش پیدا کنه. بعد از مدتی جستجو، بالاخره زیر یک سنگ بزرگ، هفرهی شبیه به قار پیدا کرد وارد قار شد نیمه های شب بود که صدایی شنید دختی چشماش رو باز کرد قول زش ای رو دید که به طرفش نزدیک میشه پسرک از قول خواهش کرد که کاری به کارش نداشته باشه و اجازه بده که یکم استراحت کنه اما قول هم با این شرط قبول کرد که فردا صبح کاری که از پسرک میخواد براش انجام بده پسر جوون هم موافقت کرد و هر دو شب رو توی قار خوابیدند و استراحت کردند. صبح که شد، قول به پسرک دستور داد که کف قار رو آب و جارو کنه و قبل از غروب آفتاب که برمیگرده باید این کار تموم شده باشه وگرنه کارش به جای باریک میرسه پسر جوون بعد از رفتن قول جارو رو برداشت و شروع به تمیز کردن کف قار کرد. اما هرچی که جارو میکرد کف قار تمیز نمی شد. خسته و کوفته. گوشه ای از قار نشست و منتظر شد تا ببینه عاقبت چه تنبیهی در انتظارشه. طولی نکشید که قول به قار برگشت. با دیدن کف کثیف قار با یه ضربهی که به سر پسرک زد جمجمه ی مرد جوون از هم پاشید و جا به جا کشته شد. برادر دومی هم از موندن توی خونه حسرش سر رفته بود. پدر و مادرش هم از دست اون آسی شده بودن. بعد مقداری آزوقه یه جفت چکمه تازه به پسر دوم هم دادن تا اون هم مثل پسر بزرگشون راهی سفر بشه. بین راه اونم مثل برادرش دوتا گدای پیر رو دید. هر دوی اونها از پسرک درخواست یه مقدار نون و شیر کردند، اما برادر دوم هم مثل برادرش دوست نداشت که به کسی کمک کنه و اصلا به این چیزا اعتقاد نداشت. در نتیجه هیچ اعتناعی به پیرمردها نکرد و به راه خودش ادامه داد. برادر دوم هم سر از همون قار درآورد و گرفتار اون قول شد و به سرنوشت برادر اولش دچار شد. شاید فکر میکنید که این زن و مرد پیر با تنها پسرشون که توی خونه باقی مونده بود با وجود اینکه دل درخوشی هم از اون نداشتن مهربون شدن. اما هر دلیلی که بود اونا چشم دیدن پسر سومشون رو هم نداشتن. زمانی که پسرک از پدر و مادرش خواست که به اون هم اجازه بدن مثل برادراش راهی سفر بشه، پیرمرد و پیر زن بدون هیچ معطری راضی شدن. چون دوست داشتن هرچی زودتر از دست پسر سومشون هم خلاص بشن. به خاطر همین یه مقدار نون و شیر با یه جفت چکمه به اون هم دادند و پسرشون رو راهی سفر کردند. برادر کوچیکتر از دیدن دنیای خارج قرق در حیجان شده بود. اما در زم مایل بود بفهمه چه بلایی سر برادراش اومده. به خاطر همین تصمیم گرفت که رد اونها رو دنبال کنه و حتماً پیداشون کنه. پسر سوم توی مسیر سفرش به تپهی رسید و با خودش گفت من مطمئنم که برادرام تو همین مکان اقامت داشتن. من همه همینجا استراحت میکنم. اون خیلی گرسنه و خسته بود. یه مقدار غذایی که پدر و مادرش بهشتاده بودن به عنوان توش یه راه رو بیرون آورد و شروع کرد به غذا خوردن. اما هنوز اولین لغمه رو تو دهنش نذاشته بود که پیرمردی از راه رسید و ازش کمی غذا درخواست کرد برادر کوچیکتر فاصله مقداری از نون خودش رو به اون داد و در ضم از اون خواست که کنارش بشینه و با هم غذا بخورن. اون با پیرمرد مثل یه دوست قدیمی رفتار میکرد آخرش وقتی پیرمرد غریبه از سر جاش بلند شد تا بره رو به پسرک کرد و گفت اسم من تیریتیره اگه یه روزی به کمک احتیاج داشتی، کافیه صدام بزنی تا به سرعت خودم رو به تو برسونم. بعد هم یه دفعه قیبش زد پسرک جوون بعد از یه مقداری استراحت به راه خودش ادامه داد. بعد از سی کردن یه مسافتی، توی قسمت دیگه‌ای توقف کرد تا چیزی بخوره. دوباره مثل برادراش با پیره دوم رو برو شد، پیرمرد دوباره از پسرک تقاضای غذا کرد پسرک هم مقداری از غذای خودش رو به پیرمرد داد پیرمرد هم موقع رفتن از پسرک تشکر کرد و به اون گفت اگه کوچکترین مشکلی برات پیش اومد صدام بزن اسم من لیتیله پسر سوم به راهش ادامه داد عاقبت به یه جنگل رسید اونجا متوقف شد تا کمی استراحت کنه با غذا بخوره. توی چشم به هم زدن همه پرنده ها بالای سرش به پرواز در اومدن. پسرک مقداری از نون خودش رو خورد کرد و به پرنده ها داد. وقتی پرنده ها تکه های نون رو خوردن، بزرگترین پرنده که پروبال های خیلی خوش هم داشت به اون گفت اگه توی درد سر افتادی فقط کافیه بگی، آهای پرنده ها پیش من بیاین و ما به سرعت خودمون رو به تو میرسونیم. بعد همهشون پر کشیدند و دور شدند. نزدیکی های غروب، برادر کوچیکتر به همون قاری که برادراش اونجا گرفتار شده بودن رسید. اون هم مثل برادراش اون قار رو محل مناسبی برای گذراندن شب میدونست. وقتی دوروبرش رو با دقت نگاه کرد و تکیه های استخون و رو دید، از دیدن اون صحنه ها ترسید، اما اونجا رو ترک نکرد، تا اینکه اون اونم با گول روبرو شد. برادر کوچیکتر با لحنی معدبانه از گول خواهش کرد که اجازه بده شب رو توی قار سپری کنه. گول هم مثل دفعات قرب با این شرط موافقت کرد. برادر کوچیتر هم، وظیفش این بود که صبح روز بعد کف قار رو تمیز بکنه. کف قار خیلی کسیفتر از دفعات قبل بود. وقتی برادر کوچیکتر جارو رو برداشت و کارش رو شروع کرد، هر چقدر تلاش میکرد نمیتونست کف قار رو تمیز کنه. خیلی ناامید شده بود. اما همون موقع به یاد حرفهای گدای پیر افتاد. اسمش رو صدا زد. تیری تیل، تیلی تیل، لطفاً بیا کمک هم کن. تو یه چشم به هم زدن تیری تیری کنارش ایستاد و به اون گفت چه کاری با من داری؟ و پسرک همه یه ماجرا رو براش تعریف کرد. همون لحظه تیری تیر به جارو گفت آهای جارو کارت رو انجام بده. و جارو بلافاصله کارش رو شروع کرد و طوری نکشید که کف قار تمیز شد و تیری تیر هم از اونجا رفت. برادر کوچیک با خوشحالی منتظر بازگشت قول شد. وقتی که قول به قار برگشت رو کرد به اونو گفت حتما از یکی کمک گرفتی وگرنه کار خودت نیست. به هر حال من سر حرفم هستم. تو در امان هستی. صبح روز بعد قول از پسرک خواست که همه ی پرهای بالش رو بیرون بیاره و اونها رو جلوی آفتاب پهن کنه تا خشک بشن. و اون رو تهدید کرد که اگه یکی از پرههای بالشتش گم بشه مجازات سختی در انتظارشه پسر بیچاره بالشا رو بیرون آورد و پرهای اونها رو دروی آفتاب روی زمین پهن کرد خوشبختانه از وزش باد هم خبری نبود اما ناگهان باد شروع به وزیدن کرد پرها تو هوا پراکنده شدن. از دست پسرک هیچ کاری بر نمی اومد نمیتونست اونها رو جمع بکنه کار ساده ای نبود پسرک بیچاره همون لحظه با ناامیدی فریاد زد تریتی تیل، لیتی آی پرنده ها بیایید به من کمک کنید همون موقع دسته پرنده ها از راه رسیدند و پرهای بالش رو جمع کردن و تریتی تیل و لیتی هم پرها رو توی بالش جای دادن اما اونها یکی از پرها رو نگه داشتن و به اون گفتن اگه اون قول متوجه شد که یکی از پرهای بالش کم شده، اون رو توی دماغش فرو کن. بعد هم تیریتیل و لیتیل و پرنده ها توی چشم به هم زدن، از چشم پسرک ناپدید شدن. وقتی قول برگشت، یه را سراغ تختش رفت و روی اون دراز کشید. بالشها ها خیلی نرم بودن. خالی هم نبودن. قول زده شده بود. اما از سر جای خودش بلند شد و شروع به شمردن پرهای بالشش کرد آخرش هم رو به پسرک کرد و گفت اگه یکی از پرها کم باشه سرت رو به باد میدی همون موقع پسرک پری رو که توی جیبش مخفی کرده بود از داخل جیبش بیرون آورد و توی دماغ غول فرو کرد و گفت اگه دنبال این پر میگردی بگیرش قول با لحن ملایه می گفت این کار هم کار خودت نبود. یکی بهت کمک کرده. من مطمئنم. شب شده بود. پسرک بینوا گوشه ای از قار به خواب سنگینی فرو رفته بود. صبح روز بعد قول بعد از نشون دادن گله گافهاش به پسرک گفت از بین این پنجاه تا گاو، تو باید بزرگترین گاو رو پیدا کنی و بکشی بعد هم قلبش رو برام بپزی ضمن از شاخاش هم چند تا فنجون درست میکنی اگه اون گاو گاو مورد نظر من نباشه مر یه تطمیه اما اگه کارت رو درست انجام بدی نه تنها آزاد میشی بلکه اجازه داری که سه تا چیز از من بخوای به عنوان پاداش که من هم بهت میدم پسرک بیچاره تنها و درمونده به فکر فرو رفت. این بار هم مجبور شد که اسم اون دوتا پیر مرد به زبون بیاره. تیری تیر، به کمکتون احتیاج دارم. طولی نکشید که پسرک پیر ها رو دید که سوار بر بزرگترین گاو شدن و به سمت اون دارن میان. تیری تیر گاف رو کشت و قلبش رو بیرون آورد. و پسرک جوون داد تا اون رو بپزه بعد هم اونها به اتفاق لیتیل دست بکار شدن تا از شاخهای اونگاف چند تا فنجون درست کنن همه کارها به خوبی پیش رفت و انجام شد پسرک با خوشحالی به پیرمردها ها گفت که بعد از انجام دادن این کارها قرار آزاد بشه و ستا چیز هم میتونه به عنوان پاداش انتخاب بکنه دو تا به اون گفتن تو به عنوان پاداش باید از گول صندوقچه کنار تخت و چیزی رو که زیر تخت و روی تختش گذاشته رو بخوای. پسر کوچیک از دو تا پیره به خاطر کمک ها و راهنماییشون تشکر کرد و ازشون خداحافظی کرد و پیره ها هم رفتن. توی نکشید که گول برگشت و در نهایت تعجب همه چیز رو مرتب دید. قبل از اینکه بشینه و قلب گاو رو بخوره رو به پسر جوان کرد و گفت تو این کارا رو تنها انجام ندادی با این من سر قلم هستم و فردا صبح تو رو آزادت میکنم صبح روز بعد وقتی خورشید طولو کرد قول مرد جوان رو از خواب بیدار کرد و به اون گفت حالا اون ستا چیزی رو که گفته بودم میتونی انتخاب بکنی پسر جوان جواب داد من اون صندوقچه ای رو که کنار تختت گذاشتی و اون چیزی رو که روی تخت و زیر تخت داری رو انتخاب میکنم. قول جواب داد این چیزایی رو که انتخاب کردی فکر خودت نبود. اما من سر حرفم هستم و اونا رو به تو میدم. اون چیزی رو که روی تختش گذاشته بود یکباره تبدیل به شاهزاده خانم گم شده شده بود. صندوقچه کنار تخت هم پر از جواهرات و گرانبهاوو، و طلاهای خیلی زیبا بود و اون چیزی که زیر تختش بود یک کشتی بزرگ که مجهز به بادبان و پارو بود که میتونست هم توی خشکی و هم توی آب حرکت کنه. غور به پسرک گفت: "حالا تو خوشبخت‌ترین مرد این دنیایی." و بعد از اون پسرک از توی غار بیرون اومد. مرد جوان صندوقچه پر از جواهرات رو بار کشتی کرد و سپس همراه با شاهزاده خانم به طرف قلمرو پدر اون دراهفت افتادن. پادشاه از دیدن دختر گمشده‌اش اینقدر خوشحال شد که قش کرد. اما وقتی که به خودش اومد و همه ماجرا رو از زبان پسر جوان شنید به اون گفت تو دخترم رو پیدا کردی. حالا میتونی باش ازدواج کنی.